اگر شبها همه قدر بودی شب قدر بیقدر بودی اگر سنگ همه لعل بدخشان بودی پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی